آبو گلم بشق تو سرشته شد زینب آبو گلم بشق تو سرشته شد زینب به دست حق روی دلم نوشته شد زینب به دست حق روی دلم نوشته شد زینب نور آن علانی تو مشعل شوری نور آن علانی ما شاه منت تا اگر حسین شاه من تو امپراتوری اگر حسین شاه من توری از کوچیکی اشک دلم ساقیه بی دسته از کوچیکی اشک دلم ساقیه بی دسته غنچه از جام چشاش حسین سرمسته غنچه از جام چشاش حسین سرمسته مست گله یاسم اسیره احساسم مست گله یاسم اسیره احساسم مثل رو گاهی اش عاشق آدم و شده آدم خانو شهدا زانو فرشته و جن و ملک به خدمت بانو فرشته و جن و ملک به خدمت بانو بی مقصد و مطلب معنی ته بو تا بو مقصد و مطلب معنی ته بو تا بو مرجع تقلید حسین حیو خانوم زینب مرجع تقلید حسین حیو خانوم زینب حسین ندل اوغلی یا آله یالی من حسین بدل اولیلی یالی یای که بهمون که او تیدش مالی یالی با دراده تا شهرر شوه حتیز هزار را ضیمش کمتر کمیل که منخور خلداون او ودون ودونه من خو خلدا ونا و دوره نبودی خون خداوندی نبود گر نبودی خون خداوندی نبود گر فشاونم دست ریزم داستی بود گ از ریزم زاستیم صد هزارون جبر راستیم من به دیهی به رو من به دیهی به رو بودی ایسی عبدو من عبا عبدالله